فصل 21 ایسا به اطراف نگاهی کرد و ملاحظه فرمود که دولتمندان هدایای خود را به صندوق بیت المال معبد می‌ریزند همچنین متوجه بیوه‌زن بسیار فقیری شد که دور ریال به داخلان انداخت عیسی فرمود بدانید که در واقع این بیوه‌زن فقیر بیش از همه پول داده است چون آنان از آنچه که برای آن مصرفی دادند، اما او با وجود تنگدستی تمام خرج معاش خود را داده است. عد درباره معبد بزرگ گفتگو می کردن و سنگ های زیبا و هدایایی که بانها تزئین شده بود تعریف میکردند. عیسی فرمود و ما درباره این چیزهایی که بانها خیره شده اید، زمانی خواهد آمد. که هیچ یک از سنگ‌های آن روی سنگ دیگری نخواهد ماند همه زیر روح خواهند شد آنها پرسیدن ای استاد این اتفاق کی خواهد افتاد و علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود عیسی فرمود مواظب باشید که گمراه نشوی بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من او هستم و آن زمان موعود رسیده هست با آنان همراه نشوید وقتی درباره جنگها و اختشاشات چیزی میشنوید نترسید این چیزها باید اول اتفاق بیفتند اما آخر کار به این زودی ها و رسد ملتی با ملت دیگر و مملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد زمین لرزه های سخت پدید میآید و در بسیاری از نقاط خشکسالی و بلاها و در آسمان علامتهای وحشتاور و شگفتیهای بزرگ دیده خواهد شد. اما قبل از وقوع این همه شما را دستگیر خواهند کرد و به شما آزار خواهند رسانید، شما را برای محاکمه به کنیسه ها خواهند کشانید و به زندان خواهند انداخت، شما را به خاطر اینکه نام من بر شما از پیش پادشاهان و فرمانروایان خواهند برد و این فرصتی برای شهادت دادن شما خواهد بود. لازم نیست که جوابهای خود را قبلاً حاضر کنید، چون خود من به شما قدرت بیان و حکمتی می که هیچیک از مدعیان قدرت مقاومت و تکذیب را نداشته باشند، حتی والدین و برادران و خیشاوندان و دوستانتان شما را به دام خواهند انداخت. آنها ادهی از شما را خواهند کشد و به خاطر نام من که برخورد دارید، همه از شما رویگردان خواهند شد اما مویی از سر شما کم نخواهد شد با پایداری جانهایتان را رهایی خواهید داد. اما هر اورشلیم را در محاصره لشکرها میبینید بدانید که ویرانی آن نزدیک است. در آن موقع کسانی که در یهودی هستند باید به کوهستان ها و آنانی که در خود شهر هستند باید آن را ترک کنند. و کسانی که در حومه شهر هستند نباید وارد شهر شوند چون این است آن زمان مکافات در آن زمان که تمام نوشته های کتاب مقدس به حقیقت خواهد پیوست وای به حال زنانی که در آن روزها باردار یا شیرده هستند چون پریشانحالی شدیدی در این زمین رخ خواهد داد و این قوم مورد خشم و غضب الهی واقع خواهد شد آنان به دم شمشیر خواهند افتاد و به اسارت به تمام کشورها خواهند رفت و اورشلیم تا آن زمان که دوران ملل بیگانه به پایان نرسد پایمال آنان خواهد بود در خورشید و ماه و ستارگان علامتها ظاهر خواهد شد در روی زمین ملتها از قرش دریا و خروش امواج آن پریشان و نگران خواهند شد آدمیان از وحشت تصور آنچه بر سر دنیا خواهد آمد از هوش خواهند رفت و های آسمانی بلرزه خواهند افتاد آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابری میآید وقتی این چیزها شروع شود شما راست بیسید و سرهایتان را راست نگاه دارید چون رستگاری شما نزدیک است ایسا برای آنان این مثل را آورده گفت به درخت انجیر و یا درختان دیگر نگاه کنید. به محض اینکه می میبینید جوانه میزند میدانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی که وقوع این چیزها را میبینید مطمئن باشید که پادشاهی خدا نزدیک است. یقین بدانید که پیش از درگذشت نسل حاضر همه اینها رخ خواهد داد. آسمان زمین از بین خواهد رفت اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت مراقب باشید و نگذارید دلهای شما با پرخوری و مستی و اندیشه‌های دنیوی تیره و تار شود چون آن روز بزرگ ناگهان فرا می‌رسد آن روز مانند دامی بر سر همه آدمیان در سراسر دنیا خواهد افتاد پس گوش به زنگ باشید و تر تمام اوقات دعا کنید تا قدرت آن را داشته باشید که همه رنجهایی را که به زودی پیش می آید پشت سر بگذارید و در حضور پسر انسان بیستید. ایسا روزها را به تعلیم در معبد اختصاص داده بود و شبها از شهر خارج می شد و شب را در کوه زیتون به صبح می آبرد. و صوبگاهان مردم برای شنیدن سخنان او در معبد اجتماع می کردند.